یک روز خلواره یک دست گل کوچک کوتاه قد برایت آوردم. پدرت ناگهان و پیش از تو سر رسید. دست گل را دید. آزری خندید. <تصفح> این را باش. در سوالان من گل بالاتر از قامت توست گیل مرد کوچک. تو در دریای گل برای دخترم یک قطره گلک آورده ای مردک این قطره پر از ارادت است آقا اما در آن دریای شما جز گل هیچ چیز نیست آن وقت تو از دور پیدا شدی و پدرت در آنی گم شد و من دانستم که او گرچه بسیار تنومند است و آمیانه سخن میگوید و با دست قضا میخورد عشق را اما می‌داند آن روز روز سوم سبلان بود و تو سه روز بود که عاشق من شده بودی عشق دل مضطرب نمی‌خواهد قرار و آرام بگیر محبوب خوب آزری من آرام بگیر از کودکی اصل را بسیار دوست داشتم این شاید یک قطعه خیال خالص چسبنده شیرین تلای رنگ بود کودکان کمسال قدرت انتخاب ندارند کودک عاشق مادر نیست محتاج مادر است عشق احساسی و کلامی کودکانه نیست یک قطعه خیال خالص طلایی به نام اصل را دوست داشتم و بعدها این دوست داشتن خیالی گرفتارم کرد زمانی اصلی خریدم که اصل نبود دلم شکست برانگیخته شدم در به در به دنبال اصل اصل گشتم نیافتم اصل فروشان پیوسته فریبم میدادند اصل فروشان چیزی را میفروختند که مثل اصل بود دلم بیشتر شکست دلم برای کودکی هایم سوخت دلم برای خلوصم سوخت، نمیخواستم از کودکی تا نوجوانی تا جوانی تمام چیزی را با لذت یک لقمه هر صبح در دهان نهاده باشم که دروغ بوده باشد. هر جا که رفتم حتی کنار بسیاری از کندوها اصل راست نیافتم و زنبوران بیشماری را افسرد و متاسف یافتم و گریستم. برای ساختن یک جهان جعلی که در آن هیچ چیز همان چیزی نباشد که باید، گروهانی از آدم‌ها سرسختانه تلاش کردند و ایشان به احترام همین تلاش جانفرسای قولاسای کمرشکن دمی به صداقت باز نخواهند گشت دمی روزی زنبوری به من گفت به ما آموختند که اصلی بسازیم که از جنس شیره گلها نباشد و فشرده اطر گلها را در خود نداشته باشد. اگر اصل واقعی بسازید، اعدامتان می کنند؟ اعدام؟ چه حرفها در میان همه جانوران جهان فقط انسان ها اعدام می شوند. به وسیله انسان دیگر هیچ جانوری اعدام نمیشود. و نمی کند اگر پدرمان وقتها که زنده بود از کندوهای جنگلی گهگاه برای من اصل ناب معتر نیاورده بود من به خاطر آن که اصل فروشان عمری فریبم داده بودند ممکن بود خودکشی کنم یا اصل فروشان را قتل عام کنم و اگر نکردم به جای آن در خلوت بسیار گریستم و گریستم روزی از مردی که می گفت اصل اصل را میشناسد پرسیدم: اصلی که بی بیتردید کارمایه زنبوران درست کار بیریای عاشق گل باشد کجا می توانم بیابوم؟ اصل شناس گفت: «در کوپ های گلباران سبلان جایی که اگر بخواهی نشانیش را به تو میدهم: گل مثل دریا تو را در خود غرق می کند. من در سوالان دوستی دارم. شک که در خلوص اصلش گناه کبیره است من معلم خسته ادبیات شاعری که هرگز نتوانسته بود یک شعر ناب بگوید در ابتدای تابستان کارم را که تمام کردم بارم را بر دوش انداختم و به راه افتادم از انزلی به سوی گردنه حیران و از آنجا به کوهستان‌هایی با مرزهای دروغین زاده زور من شناگر از کودکی در آب قوت خورده شمالی اگر در دریا به آسانی غرق نمیشم، در دامنه‌ی سبلان به ناگهان چنان گلباران شدم که یک پارچه خیس از اتر زنده گلها چتری از رؤیای رنگ بالای سرم گشوده شد وزیر زیر چتر کولم را زمین گذاشتم روی سبز سفرم را باز کردم و خستهی خسته پنیر تبریز را با خیاری که تراوت و تردی پوستش چاقوی زنجانیم را خجل می‌کرد لای نان تازه دهی گذاشتم چه اطری خدای من صدای زنبور می آمد و تو را دیدم که از دور می آمدی. ظهر گل با قامت تو که از دور کوتاه مین مود پر از مینای سفید شد چنان که آسمان را ناگهان قطعه های سپید ابرهای پنبهی الماس نشان کند این سخن را بعدها ساختم عشق یعنی پویش ناب دائمی به سراغ خستگان روح نمی آید خسته دل نباش محبوب خوب آذری من شش قزلالای دان قرمز پروار من به دام هشت قزلالای خوب برادر تو که در سایه یک درخت تنومند نشسته است و بیجهت میخندد. و تو همچنان در اندیشه ازلتگذینی های بی چادرهایی در اعماق جنگل چادر نشینان همه بن دندان مسلح مهی به فشردگی رنگ روغنی که تازه بر تخت شستی نشانده ایم. مه راستین اما از جرفای دره ونداربون سرخوران میآید و کنار دیوار شیلات زیر درختان پیر بر رودخانه ما را در میان میگیرد حتی توکای سیاه نیز بران آن شاخه نزدیک دیده نمی شود اما صدای آواز الیکایی از دور میآید قطره های ناپیدای مه پوست صورت تو را براق بر می کند برادرت ناگهان انگار که به هیچ دلیلی، فریادی شادمانه و قولا صبر می کشد. نعره قریب که یک گل گاو را می رماند. گاوها برادرت را بد نگاه می کنند. اصل روی لباس سرخ گلدار دخترک خفته در زنبیل روسری سرخ گلدار می اندازد تا مبادا گاوهای خشمگین به دخترک حمله کنند. من میخندم برادرت میآید با زنبیل ماهیهایش چه شد چرا آنطور نعره کشیدی، مار شادی ناگهان مرا گزید خواهرجان شادی از اینکه هنوز زنده ای، زندم، اینجایم در جنگلی از درختان ون کنار سرداب رود نزد شما و نزد مردمی که دوستم دارند و کسانی که مرا به دشخی ما نسبردند ما میخندیم ما آرام و آشغانه میخندیم برادرت بلند میخندد بگذاریم این لحظه عظیم آسودگی را تجربه کند من او را لو ندادم من هیچ برادری را به خان نسبردم گاوها ها گاوند که بد نگاه می کنند تو اما هنوز در اندیشه آن بیست و روز هستی که تاب آوردم. و آن دو ماهی که هرگز درباره چیزی ازتون تو نپرسیدم و نخواهم پرسید حکایت رفته است بانوی خوب آزری من دیگر به آن تاریخ خانه سرک نکشیم مستعجران عاشق بارها به با آن تاریخ خانه بازگردانده خواهند شد مگر تو نگفته ای گیل مرد کوچک برادرت نگاه می کند برای خود حق مشارکت نمی بیند همین بس که به سلاخان سپرده نشد اصل می گوید در رودبارک معلمی کنیم و آهسته آهسته مقدمات یک جنگ کوهستانی را فراهم بیاوریم ارتش شاه تیمسارهای خسته ایاش قمارباز هرگز به این ارتفاعات نخواهند آمد. گیل مرد: بیا دیگر برنگردیم به جایی که هر نگاهی بوی تعفن نگاه یک معمور را دارد. نمی شود؟ نمی شود. تا شکنجه هست هیچ نقطه ای از جهان امن نیست. آن مرد؟ با دلبستنی اوستوار به اینکه در لحظه های مصیبت تنهایشان نخواهیم گذاشت آنگونه با اطمینان میگفت عاشقان هرگز تنها نخواهند ماند میگفت برای آنکه تنهایش نگذاریم نه برای آن که یک اصل طبیعی مادی ابدی را گفته باشد باز راه مده که فکر مه مصنوعی به سر وقتت بیاید و باز حساری نرم از تخیل آسودگی. نه. ما آمده ایم چند روزی اینجا بمانیم تا ریهامان بی فشار نفس کشیدن را به خاطر بیاورد. از اینجا به دامنه سوالان تو خواهیم رفت و چند روزی پدرت را شاد خواهیم کرد. یک کندو اصل به قدر یک قطر محبت شیرین نیست. شبها دور آتش، حلقه خواهیم زد و سیب زمینی ها را در خاکستر داغ داغ برشته خواهیم کرد گلپر اصل نمک نرم من دوست دارم که یک دسته گل کوچک کوتاه قد صحرایی برای پدرت ببرم این بار فقط برای خودش خاطره دخترک قلبت را به من بسپار تنهایی پیرم کرده است <تصفيق> با یک دست گلک آمده مرا شات کند آقا همش این دسته گل کوتاه که نیست عشق هم هست ایمان سخت از آهن آب دیده من گیل مرد کوچک بیست و سه روز در اتاق زیر پله بودم و پسرتان را لو ندادم کم است؟ پدرت گرچه بسیار تنومند دست و آمیانه حرف میزند و با دست غذا میخورد. ناگهان چنان لطیف نگاه هم میکند که گویی نرم ترین پر دنیا را به صورت قلبم کشیده است. و ناگهان در وسط گلها ها نشانده می شود. به زانو در میآید و گریه سر میدهد و تو اشک میریزی و برادرت و من.